بسم الله الرحمن الرحيم فصل المحرمات من النساء حرام شدها محرم اسم مفؤول جمع الناس صالم هست المحرمات يعني زنان حرام شده اون زنان كبر انسان بر شخص حرام حسن محرم هستن والمحرمات بالنص أربعة عشرتة محرمات با نس چارده تا می باشند اینا در نس اومدند حالا چی در قرآن یا چی در حدیث سبع به نسبی و هفت تا از این زنان حرام شده یا محرم از راه نسب بر انسان بر شخص حرام هستند یک الامه مادر بله مادر که دیگه حرام هست ازدواج با مادر و این علت و چی بالاتر بره یعنی مادر مادر مادرش مادرش اله آخر. و البنتو و این سفلت دو دختر و هر چی تر بره یعنی دختر دختر دختر دختر هرچی چی بره پایین. یعنی النواهای در پایین دست میاد سه والاخت خواهر این هم محرم هست آه آه در اون آید دیگه میاد حرمت علیکم امهاتکم و اون ترتیب رایت میکنه پس مادر دختر سه والاخت خواهر خوهر چهار و خاله خواهر مادر یا خواهر مادر بزرگ یا خواهر اون هرچی میجوری بره بالاتر ولعمه عمه خواهر پدر خواهر پدر بزرگ پدر بزرگ پدری اینا همونجوس اما هستن شش و بنت الاخی دختر برادر برادر زاده برادرزاده برادر زنده انسان حرام دیگه استواج برش حرامه جز محرم های محرم های عبدی و بنت طول و دختر خواهر خواهرزاده پس اینا هفتهایی که با نسب بودند و از راه نسب حرام بودند اینا بیان شد و سنتانی بر دو نفر هم از راه شیرخارگی حرام میشند یک الام المردعت و مادر شیردهنده مادر شیردهنده این یعنی اون مادری که از راه شیری مادر است مادر حقیقی نیست این هم حرام هست مادر حساب میشه البته عرص نمیبره ولی در ازدواج و این چیزها در محرم بودنها جز محارم هست محرمات البته با محرم فرق میکنه محرم در اسطلاح خودمون اون نیست که با انسان محرم است. ولی محرمونی که ازدواج باش حرامه حالا ممکن است به قول خودمون محرم نباشه ولی محرم هست بر انسان ازدواجش حرامه مثل مثلا جمع کردن دو تا خواهر ولی با انسان محرم نیست ما میگن این محرم منه خودمون میگیم محرمونی رو میگیم که دیگه تنها بحث ازدواج نیست بحث سفر رفتن بحث مسائل دیگر سلام دادن، مصاحفه کردن، دست دادن و مسائل دیگر خب وثنتانی بالرداء و دون نفر هم از راه شیر خارجی حرام میشند مادر شیر دهنده ده دو الاخت من الرضاع خاهر شیر دهنده ده پس تا اونا بودن دوتا اینا با 9 نهتا. خب اینا رو البته چون در نس اومدن گفت دوتا از راه شیر خارجی خ... حرام میشن وگر نه همون افرادی که از راه نسب بر شخص حرام بودند، از راه شیر خارجی هم حرام میشد. که جلوتر اینو میخوریم خب و اربعون دیگه از راه ازدواج و از راه ازدواج راه نکاح بر انسان حرام میشند خبمون تمون ترتیب کتاب رعایت میکنیم پس ما تا اینجا نه خوندیم ده ام الزوجتی مادر زن مادر زن مادر زن هم دهمین ده محرم هست یازده الربیبتو اذا دخلت بل ربیبه ربیبه دختر زن میگن یه شخصی میاد زنی رو میگیره که اون زن از شوهری دیگر دختر داشت اینو بهش میگن ربیبه ربیبه هم حرام هست زمانی که شخص با مادرش ازدواج کرد و دخول داشت یعنی نزدیکی و همبستری داشت آمیزش داشت و زوجة الابی دوازده و زن پدر زن پدر بر فرزندانی که از زن دیگر هستن حرام هستن ابدی البته اینای که تا اینجا خوندیم همهشون محرم های ابدی بودند حرام هستن بر شخص سیزده زوجه الابن زن پسر چارده واحدتون واحدة من جهت الجمع این از جهت جمعه البته حرام چهاردهمین یعنی تکی باشه تنهایی باشه حرام نیست و هی اخت و زوجه خواهر زن شخصی زنش خواهری داره این بر این مرد حرامه تا زمانی که این زن زنده هست یا زنشه اگر زنش نبود طلاقش داد یا مرد میتونه خواهرشو بگیری این از جهت جمع فقط حرامه پس این به اصطلاح خودمونی خودمون میگیم محرم از اون محرم ها نیست بلکه نمیشه در کنار خواهرش با این استواج کرد اون بحث نکاح هستی لذا اومد اونایی که بر شخص حرام هستند و نام برد پس چهارده نفر رو تا اینجا کار نام برد تا اینجا کار مادر دختر اونایی که حرام هستن ازدواج با اونها چارده گروه تا اینجا نام برد مادر دختر خواهر خاله عمه دختر برادر دختر خواهر مادر شیرده خواهر شیری مادر مادر زن ربیبک توزی شدادیم یعنی دختر زن از شوهر دیگه زنه زنه زن پدر زن پسر و خواهر زن اینها حرام بودند اما ولا یجمعو بین المرأتی و عمتی یک کسی دیگه که حرامه عمه زنه نمیشه جمع کرد بین زن و بین امش اه امش ولا بین المرأتی و یا و نمیشه جمع کرد بین زن و بین خالش زمانی که شما با یه زنی ازدواج کردید دیگه با خالهش نمیتونی ازدواج کنید با امهش نمیتونی ازدواج کنید خب با یحروم و مینن رضایی ما یحروم و مینن نصب در آخرش اومد این مسئله رو بیان کرد تو اونجا گفت دوک نفر از راه شیر بر انسان حرام میشن مادر شیری و خواهر شیری اینجا میگه که بله اونا تو قرآن اومده بودند. اما ما حدیث داریم که تا مثلا میگه حرام میشه از راه شیرخارگی همون چیزایی که حرام بودن از راه نسب یعنی مادر شیری، دختر شیری، خواهر شیری، خاله شیری، عمه شیری، دختر برادر شیری، دختر خواهر شیری. همونایی که از راه نسب حرام بودن از راه شیر شیرخارگی هم حرام میشه. یک اومد از یک زنی شیر خورد با این زن نمیتونه ازدواج کنه با دخترای این زن نمیتونه چون خاره شیریش حساب میشن با خواهر این زنی که از شیر خورده نمیتونه ازدواج بکنه چون خالش حساب میشه با خواهر شوهر این زن نمیتونه ازدواج بکنه چون امش میشه این مسائل پس حرام میشه قانون قایده کلی رو یاد بگیریم بهتر حرام میشه از راه شیر همون چیزایی که حرام بودن از راه نسب و ترد دلمراتو به خمست عیوب و بازگردانده میشه یا رد میشه زن به پنجیب این منظور عقدش بازگردانده میشه نکاحش یک بلجنون به دیوانگی دیوانه بشه بره دول جزام مریضی جزام داشته باشه جزام یه مریضی هست پوست سفید میشه در اون پوست خونی نمیمانه بله سفید سفید میشه یه مریضی پوستیه پس با دیوانگی با جزام والبارست تو برس آه. جزام معذرت جزام مریضی دیگه بود برس اون سفیدی که سفید سفید میشه پوستو خون از زیرش میره جزام چه هست؟ جزام هم مریضی هست منتها این نیست عضو ابتدا خیلی سرخ میشه سپس سیاه میگرده سپس قطعه قطع میشه میریزه اینو میگن جوزام. پس با جزام دو با همون سفیدی هست که خیلی ها دارن معمولاً سفید سفید میشن دستشون یا عزایشون هر کجا که بگیره و ورط رتق چهارمین عیب که جز ایوب حساب میشه که نکاهو به هم میزنه رتق هست این محل جما با یک گوشتی بسته میشه باره و القرن چهار و مرزی قرن این هم با استخان اون محل آمیزش بس میشه و یورد رجلو بخم و مرد هم با پنج عیب باز کردندی میشه یعنی منظور فسخ نکاه ها بل جنونی یک با دیوانگی والجوزامی مریضی جذام داشتن البرس برس داشتن والجب مریضی جب داشتن جب چیه دیگه جب همون قطع عضو هست قطعه آله همبسری حالا چه کلش باشه چه قسمتش این میگن جب ول اون نه. مرد بریزی اون نه داشته باشه اون آلهش بر نتوند نزدیکی بکند همبسری انجام بدهد اینا عیوبی هستند که نکاخو, نکاخو به هم میزنند یعنی میشه با این ایوب نکاهو طرف مقابل فسخ کنه فسخ پس یورد دو معنیش اینه بله یک این فصلو هم بخونیم فصل تصمیت المهر و وجوبه نامگذاری مهر مشخص کردن مهریه و واجب بودن آن و یستحب تصمیت المهری فی النکاحی مستحب است تعیین کردن مهریه در خود نکاح فا لم يسمى اگر تعیین نشد نامگذاری نشد صح العقد عقد صحیح ولی وواجب وجب المهرو بی ثلاثتی اشیا اما مهر از کجا تعیین میشه حالا که عقد تعیینش نکردن بعد از ازدواج چطوری تعیین میشه میگه و وجب المهرو بی ثلاثتی اشیا مهریه با سه چیز تعیین میشه واجب میشه یک ان یفریضه زوجه على نفسه شوهر اونو بر خودش تعیین کنه، واجب کنه. او یفاره باو الحاکم یا اینکه حاکم اونو واجب کنه، تعیینش کنه. واجب میشه دیگه بر شخص. او یدخوله بها فیجب مهر المثل. یا, یا اینکه دخول انجام بده، که اینجا دیگه مهر مثل رو مرد واجب میشه. پس مهری که در عقد نکاح تعیین نشده نامگذاری نشده یا شخص میاد خودش بر خودش تعینش میکنه یا حاکم یا اینکه که دخولو که انجام داد مهریه مثل مشخص میشه مهریه مثل چیه یعنی اون زنان دیگه که در سطح و در نوش هستن خواهرش هستن نگاه کرده میشه مهریشون چقدره اون تعیین میشه یعنی زنی با این سطح با این شکل مهریه چقدر هست در عرف و در جانه و لیسه لی صداقی ولا لی اکثری حدون کمترین سطح مهریه و بیشترینش حدی نداره در شریعت یعنی تعین نکرده شریعت که اقلش چقدر باشه کمترین صداق چقدر باشه مهریه چقدر باشه و لاله اکثری و همچنین حدی برای اکثره یعنی بیشترین سه مهری هم تأین نشود. و اجازه این تزوجها از منفعت معلومه. پس اقل و اکثر مهری تعیین نشده یعنی در شریعت حدی نداره که شریعت بیاد تعیین بکنه. و اجازه این تزوجها از منفعت معلومه. جائز است که مهری منفعت باشه و جائز است که ازدواج کند بازن بر منفعتی معلوم مثلا میش بگه مهری من این است که من شما رو قرآن آموزش بدم. مهری من این است که شما رو مثلا زبان عرب آموزش بدم. منفعتی بش بده و یسقطو بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهری و میشه با طلاق البته طلاقی که قبل از دخول باشد نصف مهریه پس و میشه با تلاق دادن قبل از دخول نصف مهریه مثلا اگر مهریش فرزن یک میلیون هست هنوز آمیزش نداشته و طلاقش داد نصف مهریه ساقت میشه پانسد هزار تومن ساقت میشه میمونه پانسد هزار دیگه پس نصف مهریه با طلاق ساقط میشه منظور اینه که اگر عقد بست مهریه تعیین کرد و قبل از دخول قبل از آمیزش طلاقش داد نصف مهریه فقط برش لازم میشه